شرکت پرشی پروتئین پروتین پارس مجموعه فعال در واردات و تمین مواد اولیه صنایع غذایی است که با همکاری تولیدکنندگان معتبر بین المللی همکاری می کند. این شرکت با اعزام کارشناسان متخصص به مراحل انتخاب تولید بسته بندی و حمل بر کیفیت و ایمنی محصولات نظارت مستقیم دارد و هدف اصلی آن تمین پایدار و مطمئن نیازهای صنایع غذایی کشور است. در سالهای نخست شرکت با سبت رسمی و ایجاد ساختار اجرایی فعالیت خود را آغاز کرد. بعد سالها شرکت با افزایش سرمایه تغییر مکان دفتر مرکزی و تسبیت جایگاه در بازار واردات مواد غذایی رشد قابل توجهی داشت. این شرکت در سال 1384 و چهار به صورت صحامی خاص در تهران ثبت شد و دفتر مرکزی آن در تهران خیابان گاندی جنوبی قرار دارد. آخرین سرمایه ثبتی 2250 میلیارد ریال است. شرکت دارای برند پروتین پارس الا ثبت 1396 است. مدیران شامل مهدی احمدوند رئیس هیئت مدیره و مدیر عرفان احمدوند، نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسقر احمدوند عضو هیئت مدیره هستند. مهدی احمدوند همچنین در دو انجمن صنفی قلات فعال است. شرکت تصیلات قابل توجهی از بانک پاسارگاد دارد، اما بانک تجارت در تصیلات سهمی ندارد. زمان اتنامه ها حدود ده میلیارد و 700 میلیون تومان است بدون سهم بانک تجارت. منابع مالی شرکت در بانک تجارت حدود 48 میلیارد تومان است که نشان دهنده فعالیت مالی قابل توجه است. عدم وجود مطالبات نشان دهنده مدیریت قوی بدهی هاست. شرکت خورشید سبز آریا نیز منابع محدودی در بانک تجارت دارد. این شرکت نقشی کلیدی در تامین مواد اولیه غذایی دارد. بانک تجارت می تواند با ارائه نامه و اعتبارات اسنادی وارداتی، فاکتورینگ معکوس، تامین مالی مبتنی بر سفارش خرید و خدمات خزانه داری این گروه را جذب کند و درآمد مزد خود را افزایش دهد.